اما ناگه هنهادسه عجیبی اتفاق افتاد. وقتی گفت اگر من از شما خواهش کنم چشم این زن حالت عجیبی به خود گرفت. من نمیتوانم بگویم که چه حالتی بود. استدعا کرد. التماس بود. میخواست دل مرا آب کند. میخواست مرا با این چشم های فتن بشوراند. نمیتوانم حالت این چشم ها را بیان کنم. احساس کردم وزن سنگینی دارد دل من را از محفظش می کند. ترسیدم. پریشان شدم. آن حالتی به من دست داد که گفتنی نیست. اما این را می توانم بگویم حالت چشم ها شبیه به حالت چشم های صورت روی پرده بود. میل کردم به هر قیمتی شده خودم بروم و این چشم های روی پرده را ببینم. تسلیم شدم. من تسلیم شدم منی که خیال می کردم خشک و مومیایی شدم منی که جز کار اداری و استاد چیز دیگری در سر ندارم من در مقابل این زن ناشناس زانو زدم نگاه چشم ها نیز افسون کرد چند از فرد غذاب به خود می پیچیدم. بعد چیزی در دل من آب شد بقده گشوده شد زخمی سر باز کرد و خون از آن ریخت سستی و به من دست داد دیگر شناختمش پهتوی خود گفتم چه کشیده هست از دست این زن این خیالات الان که دارم یاداشای روزهای گذشته را تنظیم می کنم به خاطرم می در آن لحظه اختیاری دیگر نداشتم و او این زن فتنگیز فوری به قدرت خود پی برد و برگشت که برود از پشت میز آمدم به طرف در آن را باز کردم رو به دالان گفتم قلام بیا در را باز کن. زن ناشناس روی صندلی کنار میز من نشست. به اون نگاهی نکردم. وقتی قلام وارد اتاق شد، پشت میز تحریرم رفتم. کید را در و به او دادم و گفتم تالار سرد است. ها؟ امروز که آتش روشن نکردی. نه خودت خودتان فرموده بودید. بخاری نفتی را آتش کن. بگذار در تالار تا ما بیاییم. و پر فرصت پیدا کرد که به آرایش خود بپردازد کیفش را باز کرد ای از آن درآورد نگاهی به صورتش انداخت با دستمال ابریشمی گوشه لبانش را پاک کرد آینه را در داخل کیف سخ رنگی که در دست داشت پنهان ساخت و به من نگاه کرد آن وقت دیگر نطخش باز شد از ساختمان موزه صحبت کرد از اینکه دوستان هنرشناس و هنر پرور در دستگاه دولتی زیاد دارد رئیس شرکت فرش او ارادت دارد. مدیر کل وزارت فرهنگ از دوستان پوکر اوست. خود معاون نخست وزیر همه توصیح های او را می‌خواند. وان تا اینها هیچ ازشان کاری ساخته نیست. اینها باباهایی هستند که میخواهند چند سباه در این ملک زندگی کنند. شریک دزدند و رفیق قافده. کسی به کسی نیست. اما او که یک زن تنها و بی کسه است. ادرین موزه را میداند و اطلاع هم دارد که چگونه باید از یک موزه نقاشی مراقبت کرد همه موزه های اروپا را نه یک بار بلکه مکرر دیده او حاضر است تمام این تابلوها را بخرد و خودش در یک ساختمان نگهداری کند بعد از وزیر فرهنگ صحبت کرد که آدم بدید نیست آن به اندازه گوساله از هنر سرغشته ندارد این زن یک ریف یک ریز حرف میزند و بیان مذهبی که مورد توجه و علاقهش باشد نبود. از آسمان ریسمان می گفت. وارد جزئیات می شد. از زن وزیع فرهنگ گفته کرد. از دخترش چیزها میدانست. است. من به حرفهای او گوش نمی دادم. از همان وحله اول ای در دل گرفتم. او را دشمن خود تشخیص دادم. او را قاتل استاد شناختم. منطقانه میخواستم به هیچ قیمتی کینهی خود را بروز بدهم. میخواستم انتقام خود را از این زن سنگدل بگیرم. به من نگاه میکرد. آیا میخواست در دل و روح من رخ نکند؟ از زیر چشم تمام حرکات او بودم. همین که دیدم به من مینگرد خود را مشغول کاری کردم. وقتی بی مرا درک در کرد پلکای چشمشین لرزید. بالای سر من تصویری از استاد بود. فرنگیس گاهی به آن نظر میافکند. در این حال حرفش را میزد. به دیوار دسته چپ در مقابل پنجره چند کاشی که استاد ترهان را داده بودند به دیوار نصب بود معمولا کسی که به دفتر مدرسه میامد همیشه مدتی به تصویر استاد چشم دوخت اما بعد رنگ آبی و درخشان کاشیها مدتی توجه آنها را جلب میکرد زن ناشناس زیاد به آنها نگاه نکرد گوی آنها را زیاد دیده بود آنگاه برگشت و به درخت کاج زیبایی که برف نقرندود کرده بود، نگاه کرد. با وجود این، زبانش بند نمی آمد. از روی صندلی بلند شد و به درخت چشم دوخت. من فرصت پیدا کردم که سراپای او را ورانداز کنم. نیمروخش زیبایی داشت. این زن میبایستی در حدود چهل سال داشته باشد. خوشندان بود. باز هم دستهایش را زیر پالو گشاد به کمرش قلاب کرد. انگشتان بلند و کشیدهی داشت. پوست سفید انگشتان با طراوت و نرم می نمود. در صورت هیچ علامتی از پیری دیده نمی شد. فقط وقتی آدم لبها و بینی را با آنچه در تصویر چشمش ثبت شده مقایسه می کرد می دید که تفاوتی هست. زوفایش بلند بود از پشت گوش تا نزدیک خط لب یک خورده بود و از آنجا تا روی شانه شکن شکن می نمود. موهای مشکی براغی داشت. مانند قاب سیاهی بود که از پوست سفیدی سفید تر جلده می کرد یک جین در پیشانیش هویدا بود از لب و دهان و پیشانی حالتی جلوگر نمی شد اما چشمها در وضع عادی غمانگیز و تأثیر آور می نمود چند لحظه در اتاق سکوت فرما شد من همش در این فکر بودم چ... که چگونه این زن را به حرف دارم، اما به حرف حسابی به حرفی که من مشتاق شنیدن آن بودم نه به حرفی که او برای تسخیر من میزند وقتی خودم میاندیشیدم که چگونه با این زن باید رفتار کرد. آیا باید با او مدارا به خرج داد؟ با او استدعا و التماس رفتار کرد یا آنکه این زن پرمدعا و خودخواه را باید با قدرت شخصیت مقتصی ساخت؟ همین سکوت او پرمعنی بود. همکنون داشت با من بازی می کرد. اقلا پس از اینکه با نگاهش مرا افزون کرد، حقش این بود که وقتی غلام را صدا زدم و به او دستو دادم که در اتاق را باز کند که به نحوی تشکر خود را ابراز بکند. این زن به چشمهای خود خیلی مینازد با چنین تلسمی استاد را افزون کرده بود و حالا در مواجهه با من هم کامیابی نصیب او شد. منطقه من مدت ها بود که شخصیت خود،, شخصیت خود را فدای استاد کرده بودم. من خود را برای هر گونه تحقیر و توهینی آماده کرده بودم. من رضایت داشتم که 20 سال دیگر هم نازم بیچاره‌ای باشم و پشت این میز محقر بنشینم. فقط با اینکه با این زن رو روبرو بشوم. بنابراین بیهتانی نمیتوانست تاثیر ناگواری داشته باشد. شاید هم فرنگیز بالا شفته بود از اینکه برای یک خواهش کوچک مجبور شده بود از آخرین و بورنده‌ترین حرفی که در دستاش استفاده کند. و با نگاهش مرا را از پادر آورد. ممکن هم بود که هنوز حال این زن به جان نیامده باشد و برای کسب قوا آرامش مصنوعی به خود میگرفت و من بی می میکردم. در هر حال او به مقصود خود رسیده بود و اینک نوبت من بود که این فرصت را از دست ندهم و این زن را به حرف وادارم. یک نقطه برای من مسلم بود، جان من دیگر به لب رسیده بود و اگر نمی توانستم سر این پرده نقاشی را کشف کنم، از پا در می آمدم. یا امروز، یا هرگز.